لا ربعاین و الْعَالَمِينَ الله اللَّهُ وَرَبَّمَا الَّذِي كَمَا قد کان قبل حظف ما فقط رو گفتیم ملغی و ملقا الازی مفعولش ابقو فیل و فائل و آید سله زمیر منصوب بوده حض شده یعنی ابقو میگه بچه بسا و قلیلن باقی میگذارند مجرور اونی رو که باقی مونده یعنی مزافونی غیرونی جر رو جر میدهند یعنی به جر باقی میگذارند الازی ابقو اونی رو که باقیش گذاشته کما قد کان قبل حذف ما تقدم ما ماي موصول است کما هم جار و مجروره حال است از برای الذی که مفعول جروست کما قدکانه یعنی مماثلا الذی یا مثل الذی مثل چیزی که قدر کانه قبل حصف ماتقدم قبل از حصف ماتقدم یعنی مضاف بوده یعنی به همون حالتی که قبل از حصف ماتقدم بوده قدر کانه قدر قد تحقیقیه کانه فل زمیر اسمش قبل خبر اسم کانه آید است به ما یعنی زمیریه که برمیگرده به مای کما آید سله به ما شود متعلق با عامل مقدر خبر است قبلا اضافه شده به حرف حصف هم اضافه شده به ما تقدمه هم فعل و زمیر فاعلش جمله سله و فاعلش آید سله هم هست پس شد و چه بسا جرده چیزی را که باقی گذاشتند در حالی که مانند چیزی است که بوده است قبل از حذف متعقدم مانند اون نیست که قبل از حذف متعقدم بوده بر همون حالتی است که قبل از حذف متعقدم میگه این شرط هم داره میگه بله شرط داره اینطور نیستش که مضاف هست کنم مضاف به جر باقی بماند مطلقا لکن به شرط انیگکون ما هزف مماسلن ما علیه قد و میگه لکن این لکن استدراکه یعنی به ذهن انسان میاد که این قضیه شرط نداره میگه نه شرط داره لکن به شرطه لکن مخفف است هیچی لکن هازا به شرطه. یعنی هازل جر رو به شرطه به پس میشه چی؟ خبر مبتدای محضور لیکن که ملغاست عمل نکرد لیکن هازل جر رو به شرط انیکونه به شرطه اضافه شده به انیکونه انیکونه ماهوزفه ما اسم یکونه حوزفه فیل زمیر نائب فایل شو آهد خبر یکونه مماسلن لما علیه قد اوتف ما مای محصول است قد اوتفه فیل علیه متعلق به قد اطف. این لام لما لام لما لام حقویت یعنی خود مماسل چیه؟ متعدیه مماثلن لما علیه قدیوته اتف. یعنی مماثلن ما یکی از این لفتاتون داره آواز میکنم نمیدونم او لاکن به شرط ان یکون ماغزفه مماصلا لما علیه قد قتفه چی شد لاکن به شرط اینکه چه که حذف شده یعنی مضافی که حذف شده مماسل باشد هم شکل باشد چرا که قد اوت علیه بر او حذف شده یعنی مماسل باشد با چیزی که بر او بگید حذف شده یعنی مضاف ما حذف شده ولی همین مضافی که حذف شده حذف شده بر یک مضافی که هم بگید مماسلن لما علیه قد اتف پیش باید میگه و به ما جر رو مضاف الهی میگه چه بسا جر بدن مضاف الهی رو اللذی مزاف الهی هی که ابقه ابقه یعنی ابقه و کما کان قبل حصف ماتقدم مثل این که اصلا مضاف هست نشده به جر رو خودش باقی مونه و خب المزاف اون ماتقدم عبارت است از مزاف میگه لیکن لا مطلقا ولی حواست باشه این مطلقان نیست بل به شرط ان یکون ماحوزفه بلکه به شرط اینکه که ما یعنی مضاف مماسلن به لفظ و مماسل باشه هم در لفظ هم در معنا مماسل باشه در لفظ و معنه لما علیه قد اتفه لما یعنی ما مفعول مماسلنه قد اتفه علیه مماسل باشه با آنچه که بر او عطف شده مماسل باشد با آنچه قد اتفر این ماهوزف علیق اونهای علیق برمیگرده به ما آقاید سلبه مصوله زمیر قد اتفر برمیگرده به ماهوزف اون ماهوزف عطب شده باشه بر یک چیز دیگری که مماسله. است مماسلن لما مماسل باشه با آنچه که قدعوت فعلای بر او عطو شده حالا نگاه کنید الان یا میگه او مقابلا له یا مقابل باشه یعنی متضاد باشه مقابلن له لح. لح میخوره به چی؟ لما علیه قدعوت فال اولو حالا دوتا مثال میخواد بزنید نه و نگاه کنید مماسلش رو گفته مقابلش هم ایشون اضافه کرد اکل امر این تحسبین امرعا و نارن توقدو به لیله نارا الان نگاه کنیدی نارن میگه بوده کل نارن بوده چی؟ کل نارن و اتباست به جای کل امرعن اول حالا کل افتاده آیا نار اعراب او رو گرفته یا نگرفته؟ نگرفته دیگه ها؟ اگه اعرابشو میگرفت نیابت کرده بود اعراب بگیر نگرفته و جر خودش باقی مونده و نارین این کلی که الان حذف شده این ماحوزفه مماثل هست با آنچه که قد اتفاله مماثل هست با آنچه که این کل به او حضف شده یا نه مماثل با اون کل اول دیگه اینم کل بوده مماسل است این ماحوزف با آنچه که بهش حضف شده یعنی کل این شاعر داره خطاب میکنه به خانمی میگه اکل امرئن تحسبی نه امرآ تحسبی نه فیل کل امرئن مفعول اولشه امرآن مفعول سانیشه میگه آخه خانم شما اتز آیا گمان میکنی کل امرئن امرآ هر مردی دو تو فکر میکنی مرده مرد به مرده تو هر کسی رو دیدی بر سیرت مرد فکر میکنی مرد است اکلا امره این تحسبین امره اا کلا امره مفعول اول تحسبین امره اا مفعول سانیش و نارن این و نارن به جای چی؟ به جای کلا نارن بوده و اتفاس به جای کلا امره اول توققدو باللیله یعنی تتوققدو باللیل صفت بر ناره یکی از تاها تو باب تفاعل تفاعل تفاعل دو تا تا جمشه جایز یکیش بیفته آ نارن تلزا تنزل الملائکتو و روح مالکم لا تناسرون یعنی مالکم لا تتناسرون و نارن توققدو باللیل یعنی تتوققدو باللیل و هر آتشی رو که در شب روشن بشه در شب روشن کنن شما خیال میکنی آتشه؟ یعنی خیال میکنی آتشیه که برای راه یافتن گم شده درست کردن؟ آخر در قدیم میامدن اونهای که کریم بودن و آدم خیلقاق بودن چه میکردن؟ آتشی رو روشن بیکردن که اگه کسی در بیابان در راه گم شده این آتش رو ببینه شب بیاد فنام بگیره صبح بره دنباله؟ کارش. میگه تو خیال میکنه هر آتشی که هست آتشه میمان است نه قایقاتن چیه تلست؟ اواست بشه و نارن توقع دوبی اللیله صفات نارن نارن. علاوه نارن اتفاق به جای امراهن. کل, ام... کل نارن اتفاق به جای کل امراهن نارن اتفاق به جای امراهن. اتفاق بر دو مفعوله بگید اتفاق بر دو مفعوله یک بیم. اتفاق بر دو مفهومه یک عامل یعنی کل عطف شده کل مقدر بر کل اول عاملش کیه؟ تحزبینه نارن عطف شده به جای امرن عاملش کیه؟ تحزبینه عطف بر دو معموله یک عامل حالا یه نفر میگه آقا چرا انقدر زحمت میکشی بگو نارن عطف است به جای امرن ها دیگه کل تقدیر نگیر اصل آدم تقدیر میگه غلطه چون اگر کل تقدیر نگیریم عطف بر دو معموله دو عامل مختلف و عطف بر دو, عامل دو معمول دو عامل مختلف در سمدی یه خوندید جایز نیست مگر در مانند فدار زیدون و حجرت که اینجا از اون رسم نیست این الان اگر نار عطف بشه به جای امره عامل در امره کیه؟ کی جرش داده؟ کل مضاف دیگه؟ یا حرف جرر مقدر؟ یا اضافه؟ هرچی نار عطف بشه به جای امره عاملش کیه؟ یعنی اون موقع ما دو تا عامل داریم دو تا عاملمون کدومه یکی مضاف کل و یکی تحزبینا عطف بر دو معموله دو عامل مختلف میشه و این غلطه به خاطر اینکه حذف بر دو عامل دو دو معموله دو عامل مختلف نشه اینجا مجبوریم کل رو تقدیر کنیم قرینه بر این دلالت میکنه و کل مقدر لفظ و معناش مشابهش با کلی که به او حذف و ثانی دومی دومی کدوم بود؟ مقابل باشه وسانی که قراءت بعضه هم مثل قراءت بعضی از قررا یکی از قررا یکی از غرها اینطور خونده توریدون هر از دنیا والله و یوریدون دیگران خوندن الاخرته که میشه چی؟ مفعول مفعول یوریدون توریدون هفهل و فائل عرزت دنیا مفعولش و بابا حالیه و حالان که الله یوریدل آخرت ها. و حالان که خدای تعالیه چیه؟ آخرت رو میتنه و الله مبتدا یوریدل آخرت ها. اگه باشه میشه فعل و, و مفعول اما خوندن یوریدل آخرت ها. اگه الاخرت باشه مضافنه نهی به جرش باقی نونده مضافنه هست شده خب مضاف لای به جدرش باقی مونده مضاف حذف شده مضاف چی بوده؟ میگه مضاف را عرض تقدیر گرفتن چی تقدیر گرفتن؟ عرض یعنی چیز فانی بعضی که میشه مماسه اونو ما کار نداریم بعضی هم مثل خود افنهش هم عمل تقدیر گرفتن که باز هم مماسه با و مقابل با عرض نیست اگه خود عرض تقدیر بگم شو مماسه عمل تقدیر گرفتن نه مماثله نه مقابل آقای ملا جلال میگه اینجا آقای ابن آقای ابن عبیر درست تقدیر گرفته و الباقی تقدیر گرفته باقی باقا. عرز یعنی فانی باقی زده شد یعنی توریدون از دنیا شما چیز فانی دنیا رو میخوای والله و یورید و باقیل آخرت، اما خدا چی رو میخواد؟ آخرت باقی رو آخرت غیر فانی رو یعنی خدا برای شما اونو می طلبه ای باقیل آخرت، باقی در مقابل عرضه کزا او ابن عبر زبی این اینطوری تقدیر گرفت آقای ابن عبر ربی یعنی می بگه ابن عشان تقدیر عمل گرفته عمل ال دیگران عرز تقدیر گرفتن یعنی شما کالای این دنیا رو میخوایی خدا کالای آخرت رو میگه اونها رو هیچ کدوم شما نفذیرفتیم کدوم رو پذیرفتیم باقی که آیه ابن عبر روی تنقیل ده قدره اوی ابن عبر روی نقط سر خط پس چی گفتیم؟ گفتیم مزافگاه اوقات هست میشه مزافان لگ جاش میشینه در اعراب و تذکیر و تنیست این خیلی خیلی غالب زیاد و خود اما شعرش گذشت و مطالبهش بعد تو این ورو ما گفت و قلیلا اسم غیر قالب شده که مضاف حد شده مضاف قلیلا به جلو خودش بگیر باقی مونده و اینم شرط داشت به شرط اینکه اون مضاف محظوف حذف شده باشه به یک چیزی که مماثله با اوست یا مقابل با اوست دو تا گفتی حالا و یحذف السانی نقطه سر خطه میگه شما بحث حصف مضاف رو کردید آیا میشه مضاف و هم حصف شه؟ مضاف و نلعی حصف شه, شه؟ میگه بله و یه زفستانی و یه غل اولو که هالی اضابهی یتسر میگه و یه زفستانی و شده که مضاف و چی شده؟ حصف شده و یه اولو بعد باقی مانده اولی یعنی مضاف که مثل حالت خودش که حالیهی اضابهیت تسل زمانی که به اون سانی چی بوده؟ متصل بوده انگار الان به سانی متسل موقعی که به سانی متسل بوده چی بوده؟ مثلا تنوین نداشته آه؟ مثلا بوده حازا قلا مو زیدن حالا زیدش افتاده شده حازا قلا مو اینه انگار مثل اون موقعی که زید چیه؟ مزمده. و یهزف و ثانی و و و آتفه یهزف و فعل از نائب فایلش فافای عاطفه یبغل اول و فعل و فایل که حال است از برای اول که حالهی جار و مجرور متعلق و عامل مقدر یعنی مثل حالهی مماسل حالهی حال است از برای اول هوی حالهی هم برمیگرده به اول یعنی مثل حالت خودش مثل حالت اولش که حالی اضا بهی یدتسلو اضا فعل شرد یدتسلو بهی یعنی یدتسلو الا اولو به ثانی مثل هنگامی که مثل حال خودش در اون هنگامی که بگو اولی به دومی چی بوده متصل بوده با هم دیگه اضافه شده بود اضا بهی یدتسلو اضافه یدتسلو بهی اضافه فعل شد یدتسلو اضافه از عدات شد اضافه میشه فعل شد منصور به جزای شد یدتسلو به ذویر بایلش بهی متعلقه به یدتسلو یعنی اضافه یدتسلو بهی انگامی که متصل بشه به هون درست شد و یهزف و سانی سانی میشه خوب در نمیاد از نظر چیزی لذا اینجا ترکیب صحیح اینه درسته که ما از نظر لفظی ترکیب کردیم چی؟ ایزا ایزای شرطیه یتسل بهی فعل شرطش و جمله مضاف الیه جزای شرط به قرینه ما قبل بگید شده ولی معنا درست نیست پس چیه اینجا؟ اینجا ایزا از شرطیت افتاده ایزا ظرف است ترکیب صحیح اینه ایزا چیه؟ ظرف است و از معنای شرطیت چیه؟ افتاده و متعلق است به اون چه که کهالهی بهش متعلقه یعنی مستقرن مشابهن اینطور میشه نگاه کنی حس میشه و دومی پس باقی میماند بگو اولی مثل حالت اول خودش مثل حالت اول خودش در چه وقت؟ در وقتی که متصل بود به دومی یعنی اولی باقی میماند مانند حالت اول خودش در وقتی که ببینید در وقتی که در وقتی که هنگامی که متصل بود به دوبانی ظرف است متعلق است به چی؟ متعلق است به اون مستقلی که کهالهی بهش متعلقه مشابهن مستقلن عامل مقدری که کهالهی بهش متعلقه بهیت تصل و جمعه مضافنه لگی ازاست ازا معنای ظرفی داره اما معنای شرطی دیگه نداره چون معنای شرطی غلط معلوم و یه ظف و ثانی ف یبقى الاول کحاله اذا یه شعری قبلا داشتیم و ما یل المضاف یعتی خلفا عن حفله اعراب اذا ما اوظفا دیدید یا نه این ازای ازا ما اوظفا رو ما ازای چی گرفتیم شرطیه جایز است از که ازای چی بگیریم ظرفیه هم بگیریم غیر شرطی اون موقع متعلق بشه به خلافن یا متعلق بشه به بگیردی ولی وقتی میشه شرطیت رو در ازا گرفت دیگه خلش از شرطیت بگیر نمی چون خل از اصلش داریم میکنیم اونجا من عنوان نکردم اینجا اومدم اول شرطی گرفتم دیدید شرطی معنا نداد وقتی شرطی معنا نداد مجبور شدیم بریم به سراغ اینکه ظرفی بشه دیگه معنا شرطی. نداشته باشه اضبهه از فصل رو. حالا بیایید خواهی. میگه و ی ظف و ساانی و یاب قبل اول ببینید اینکه مزاف هست بشه مزافون لی ح بشه مزاف باقی بمونه دو جوره مزاف هست بمونه چیه ل بشه. دو قسمه. این قسمه و یوزف و ثانی و یفقل اول و کهالیهی اضابهی قسم قالب شه. بر دو قسمه. یکی قالب، یکی غیر قالب. مثل صورت قبلی که روبه ما جر رو قسم غیر قالب بود. این الان قسم قالب شه. میگه و یوزف و ثانی و یفقل اول و بلا تنوینه. بدون تنوین میمونه. کهالیهی اضابهی تسلو مثل او حالتی که اولی و دومی دو چی بوده؟ متصفه. آقا شرطم داره میگه بله به شرطه به شرطه متعلق است به یفها باقی میماند اولی به حال خودش اما به شرط به شرط متعلق است به یفها باقی میمونه به این شرط به شرط عطف و اضافه به شرط اینکه عطف بشه درست شد و اضافه بشه الا مثل لذی لهو از تن اولا به شرط اینکه مضاف ما عطف بشه و اضافه بشه به سوی مثل چیزی که اولی بهش چیه اضافه شده بوده و اضافت این به جای اطف به شرط اطف اطف مضاف مضافه ندهی ایلا متعلق است به اضافه مثل مجروره به ایلا الازی مجروره به مثل مضافه ندهی شه لهو ازفت ال اولا ازفت فعل و فاعل ال اولا مفعولش لهو لام به معنای الاس دیگه بعد از اضافه یوزیفا متعلق به اذفته است و عائد صلبه حالا بر میگردیم مثال رو روش تطبیق می‌کنیم میگاه کنید به شرط مضاف یعنی به شرط اینکه یه چیزی رو عد کنیم برای این مضافی که مضاف الیه اش بگید افتاده پس معلوم میشه دو تا مضاف مضافون علیه از اولی یه دونه مضافون علیه افتاده به شرط عطفن علا حازل مضاف و اضافت لحازل معتوف و اون معتوف رو چکار کنیم یعنی اونی که عطف شده به جای مضاف ما ها؟ اون معتوف رو اضافه کنیم الان مثل لذی لحو از افتال اولا به مثل اونی که اولی رو بهش اضافه کردیم حالا نگاه کنید که هم قطع الله و و رجله منقاله ها این کلام عربی است. از عربهایی بوده که قولشون هم میگه قطع الله یاده. گفتم عرب چهار قسمه عرب جاهلی، مخزرمی، متقدمین جاهلی اونایی که قبل از اسلام بودن مخضرمی اونایی که هم اسلام رو کردن هم جاهلی گرفت متقدمین تا آخر خلف ها هستن آه؟ م... متاخرین اینایی این هم که دیگه بعد که بهشون محدثین هم میگن این آخری ها دیگه قولشون حجت نیست دیگه استشهاد بهش نمیشی لذا قطع الله یده الان یده نگاه کنید مضافون الهی نیست اشکال نداره یب قل اولو که حاله ایضابه حیت باشه اما به شرط ادفن به شرط اینکه ادف شده باشه چی ادف شده باشه رجل ادف شده به جای به شرط اینکه ادف شده باشه یعنی ادفن علاهادل مضاف به شرط اینکه ادف شده باشه بر این مزاف. یعنی رجل ادف شده بر یب یعنی. و اضافه و به شرط اینکه اضافه شده باشه به سوی مثل الذی له عذف ثلث اضافه شده باشد یعنی دوبومی معطوف. به سوی مثل چیزی که اولی بهش اضافه شده که رجل اضافه شده به من آله ها این من قاله ها مثل همون چیزیه که ید بهش اضافه شده بوده اصل این اون جمله چی بوده قطع الله ید من قاله ها و رجل من قاله ها پس چی شد گفت مضاف داریم و مضافون الای مضافون الای اگر افتاد قسم قالب اینه که یه چیز دیگری بر این مضافعت بشه و اون چیز بر مضافن مشابه مضافن علیه اولی اضافه شده باشه این قسم قالبه مشخصه قطع الله یده و رجلم هم قالب مثل که بگم اکل تو یا اخذ تو ربعه و نصف الخبز یعنی چی اکل مثلا اخستو یا تو ربع و نصفه مم. یعنی تو ربع خبزه و نصفه خبزه یعنی سه چهارمشو ولی ربع از اولی به قرینه دولو می چی شده؟ هست شده برگردید تو کتاب سمدیه تو بحث منادا یه دونه مثالی میزنه مم. یا تاییم و تاییم یا زید و زیدل یه عملاته میگه اگر دوتاشو منصوب بخونیم یا زیده زیده عملات یا تاییمه تاییمه اونجا همین بحث هست میگه بوده اصلش یا زیده علی عملات زیده علی عملات علی عملات از اولی به قرینه دومی دو میچی شده افتاده مشابهش البته اونجا ما سه تا نظر نقل میکنیم، همون سه نظر اینجا هم هست الان ایشون نظرش اینه که یده مضافنه لیهش عرض شده به قرینه چی؟ به قرینه رجل، مضافنه رجل این نظر ایشونه سی عکس این نظر داره سی میگه اول قرینه میاد بعد اون چیزی که میخواد این قرینه باهاش عمل بشه سی میگه بلکه این منقاله ها مضافنه لیه یده و مضافنه لیه رجل بگید عذب شده به قرینه چی به قرینه مضاف الیه قبلی یعنی قرینه زودتر اومده اصلش بوده قطع الله یدمن ها و رجل از رجله عذب شده به قرینه یدمن قالهها این نظر سیبویه ای. که از دومی حذف میشه به قرینه اولی اول قرینه میاد نه اینکه از اولی حذف کنن به قرینه دومی نظر مصنف اینه که نظر مشهور از اولی حذف شده نظر سیبویه اینه که از دومی فررا اونجا هم تو یا زیده زیدلی عملات یا تایی متایی معدیین گفت هر دوته ایم اضافه شده به عدید اینجا میگه یده و رجلت جفتش اضافه شده به منقاله این دوتا مضاف مضافه نداری این نظر فررای که تبارد آمله این بر معمول واحد رو قبول داره برای که اونجا تکراشه تو ذهنتون گفتم پس علایه ها نظر مصنف ما این شد که ید مزافون الهیش افتاده و شرط هم داره شرطش این بود که یه چیزی بهش عد شده باشه و اون چیز اضافه شده باشه به مماسل مضافن الهی محضور هم شکل اون مضافن الهی محضور ای یاد هم قاله ها و رجل من قاله ها و قد یعتی زالک قد یعتی یعنی چی؟ یعنی قسم غیر قاله این قسم قاله که مزافون الهی بیفته و یه چیزی اعض شده باشه به مضاف که اضافه شده باشه به همون مضاف الی این قسم غالبه اما قسم غیر غالب کدومه و قد ی که من غیر عطفه گای اوقات این مطلب میاد یعنی اینکه مضاف به حال خودش باقی بمونه من غیر عطفن بدون اینکه عطوی در کار باشه مثل چی کما حکل کسائیو همانطور که آقای کسایی حکایت کرده بود من قولهم از قول عرب ها که چیه که آید کرده بود افاقه تنام و ام اسفله گفتیم یا نه افاقه چی بود از نوع نویگن منویگا اسفله هم همینطور الان مضافنه رای افتاده از اولی افتاده اما دوبامی هم ازشتی شده افتاده یعنی از قسم غالب نیست یا مثل اون شعر دیگه من قبل نادا کل مولا قرار بتره. یعنی نوع نویگن منویگا قسم غیر غالبه. مضاف الیه هست بشه مضاف به حال خودش باقی بماند اگر عطف و اضافه در کار نباشد قسم نسیی نووین منوی یا هم باشد چیه غیره قالبه و قدیتی و قدیتی یعتی زادکم غیره اذن بدون عطف کما هاکر کسایوم من قولهم افوقتنا مو امر عفوا نقطه فرخه این یه مبحث دیگه از تو باب اضافه داره شروع میکنه آخرین مبحث باب اضافه هست اینه آیا مزاف و مزافون الگ که کل کلمت ارواهده هستند و مزافون الگ جانشین تنوین است برای مزافت درست یا نیست؟ گفتیم دیگه یعنی همونطور که اسم با تنوین تموم میشه با مزافون الگ هم تموم میشه آیا بین مضاف و مضاف که کل کلمات واحده هستند و مضاف الیه در رتبه تنوین است برای او آیا چیزی بین این دو تا میتونه فاصله کنه یا خیر یعنی بابی که اینجا داره باز میکنه باب فصل بین مضاف و مضاف الیه میگه دو جوره میگه دو جور فاصله داریم یک فاصله داریم که در غیر ضرورت شعری یه صورت میگیره یعنی فاصله میشه بین مزاف و مزافن لک در غیر ضرورت شعریه چند قسمه میشمونه یک بار دیگه عنوان میکنه بین مزاف و مزاف و لک فاصله شده فقط مخصوص ضرورت شعریه در غیر ضرورت شعریه اگر گفته بشه چیه؟ پس فاصله شدن بین مزاف و مزاف و دو گونه است. یک قسمه غیر ضرورت شعریه دو قسم ضرورت شعریه هر کدوم من مواردی داره که باید حفظ کرد گوش کنید عبارتی که اینجا دارد ایشون این عبارت از نظر ترکیبی یه مقدار همچین بیگانه مشکله عبارتی که داره نگاه کنید فصل مضافن شبه فعلن ما نصب مفعولن او ظرفن عجز من ترکیب میکنم بعد اینو به شکل نصر رو در میارم تا اینکه بتونید بفهمید این شعر رو عجز فعل و فایل عجز اجازه یو جیز و اجازتن فعل و فایل عجز فعل از تو زمین انده چی؟ فایلش فصله مفعول عجزه خود فصل چیه؟ مستره دیگه؟ یعنی جدا کردن خود فصل مستره مسترم میتونه عمل کنه دیگه مثلا اضافه بشه به فائلش مفعولشو من بر داره یا اضافه بشه به مفعولش فائلشو چیه؟ محفوظ که قسم دوم کمه که اضافه بشه به مفعولش فائلش بعد. اینجا از همون قسم کمه شه فصل مستره مفعوله عجزه. اضافه شده به مضافه مضافه مفعوله شده شبه فعلن صفت مضافه شبه فعلن چیه؟ صفت مضاف ما محلن مرکوب فائل این فصله ما این محصول هستم نسبه فیله زمیر مضاف فائلشه مفعولش که زمیر منصوب بوده و آید بوده چی شده؟ هست این مفعولن او ظرفن هر دو تمیز است برای نسبت نسبه نسبش بدهد از چه جهت میگه از جهت مفعولیت یا از جهت ظرفیت چی گفت میگه اجازه بده فاصله کردن را که نسب داده از او را مضاف در حالی که مفعول است یا ظرف است فاصله کند؟ چی جدا کند؟ مزافی را که شفه فعل است الان نگاه کنید اجازه بده عجز فاصله کردن جدا کردن جدا کردنه اجازه بده جدا کردنه آنچرا فاهد آنچرا نسب داده است مزاف او را به عنوان مفعول یا به عنوان زف جدا کند این آنچرا که نسب داده چی رو جدا بکنه؟ مزاف را مضاف مزاف؟ مضافی که شبه فعل است از مزافون الیه یه ان المضاف الیه داشته بعد از شبه فع یعنی فاصله بندازه مضاف رو از مضاف آن چرا که نصبش داده به عنوان مفعول یا چی میگه؟ نگاه کنید نگاه کنید کنی؟ یه مضاف یه مضاف یه مضاف یه مضاف میگه بین این مضاف و مضاف الیه اجازه بده چیزی را که خود مضاف نصبش داده به عنوان چی مقبول یا ظرف بیاد فاصله کنه آه. مثلا من بگم زر و زیدن اعجبنی زر و زیدن بعد دین زر و زید علیومن درست شد یا فدار بیاد چیکار کنه فاصله کنه علیوم و فداری که مال خوده بگید ضربه ها مال خوده زر ها پس این حالا من اگه بخوام به شکل نصر در بیاریم این میشه نگاه کنین عجز عجز رو گذاشتم سر به جای فصل من میتونم از مستر معول درست کنم دیگه یعنی ان بیارم با فعل یعنی به جایی که بگم فصلم و بگیم ان یب میشه دیگه مستر تاویل اگه فعل و ان تاویل برم به مستر بشت میگن تاویل اگه مستر رو برگردونیم به ان و فعل ب یعنی ما ترجیح کنیم بگیم عجز تا تالا شد عجز فصله بعد چی بود فائل فصل؟ ما به جای ما میذارم الگزی مرسته؟ عجز انیفزله الگزی آید سلش حد شده بود یا نه؟ نسبه او بعدش میرسد آید سل رو میارم الگزی نسبه هو فائل نسبه چی بود؟ زمیر که برمیگش به مضاف خود کلمه مضافو میذارم المضافو شد عجز ان یفظله اللذی نسب خود مضافو بعد مفعولا او ظرفن رو میارم میگم جهت مفعولیته اوز ظرفیت تا اینکه معلوم بشه این چیه تمیزه ها؟ شد اجازه بده این که فاصله به چیزی را که نسب داده آن را مضاف از جهت مفعولیت یا ظرفیت فاصله بین اندازه چی؟ حالا میخوام مفعول انیابصله رو بیارم. مفعول چی بود؟ تو عبارت مضاف. مضافن. مضافن یه صفت داشت چی بود؟ شبه فعل. اینکه جدا کند مضاف را، مضافی که شبه فعل است، از چی جدا بکنه بگید؟ عن المضاف فعلا یا عن المضاف جار مجروریه که تو عبارت اص شده. مینویسم مضافن شبه فعلن عن المضاف فعلا عبارت میشه نحس. میشه اجازه بده عجز ان یفصل الذی نسبه مزاف من جهت المفعولیه یا ظرفیته مضافن شبه فعله عن المضافن اینو که شعر رو انسان میفهمون بود ولم یعب واو واو استنافیه لم یعب فعل مجهول آب ایبر یا و مشغولش یعابو آب و یعی بو مشغولش میشه چی یعابو مثل با اغبیو مشغولش میشه چی یوباو لم بیاد میشه چی لم یوبع حالا اینجا میشه چی لم یعاب الف افتاده به التقاء ساکن و عیب شمورده نشده است فصل و یمینه فاصله شدن قسم فصل و یمینه ناالفاعل لم یعاب فاصله شدن قسم ایرش مورد نشد پس اگر مضاف ما شبه فعل باشه بین او و مضاف الیهش ظرف و مفعول میتونن چیکار کنن فاصله کنن و اگر بگید قسم هم بیاد فاصله بکنه اشکالی نداره قسم ربطی نداره به اینکه مضاف شبه فعل باشه قسم حتی شبه فعل هم نباشه فاصله میکنه گفته ولم یا فصل یمینن مطلقاً فصل یمین اشکالی نداره تا اینجا قسم غیر ضروری بود از اینجا به بعد نگاه کنید وذ ترارن وجدا به اجنبین او بنتن او ندا از اینجا به بعد چی شروع میشه فاصله شدن در ضرورت شعریه وجدا وجدا فن قر مشهور زمیر فصل همون فصله مضافن زمیر فصل لاربه واهلش پیدا شده از این فاصله شدن از ترارن مقبولون لهه برای فعل وجده پیدا شده است. از این فاصله به جهت چی؟ استرار. از روی ازترار فاصله به چی؟ به اجنبی متعلق است به وجده به اجنبی او به ند عطف به جای به اجنبی او ندا ندا فاصله کنه پس سه تا چیز هم هست که در ضرورت شعریه فاصله میکنه یکی اجنبی اجنبی یعنی, چیز؟ یعنی چیزی که معمول مزاف بگیر معمول مزاف نیست یعنی مثل قبلی مفغول یا ذر نیست یا نعت مزاف نعت یا نداست نعت و ندا و اجنبی هم بر ضرورت شعریه میتونه فاصله پس گفت قسم چه مضاف ما شرف فعل باشه چه نباشه میتونه فاصله کنه عیب نیست ضرورتم هم نیست اما اگر مضاف ما شرف فعله در اونجا مفعول و ظرفش فاصله کنه هیچ عیبی نداره ضرورت نیست اما در ضرورت شعریه هم دیده شده که اجنبی یا نه یا ندام میاد چی کار میکنه فاصله نیست چون؟ حالا بیایید خواهیم فصل هم مضافه نیست. فصل مضافن به نسب فصل مضاف میگه به نصب بخون مفعول و عجز مفعول کهیه؟ عجزه که ما هم گفتیم شفه فیلن صفت و مضاف شفه فعل صفت کهیه؟ مضافه ما هم تو ترکیم گفتیم. ای حالا شفه فعل چه چیزاییه؟ میگه ای مسترون و اسم ال فا... مستر باشه یا بگو اسم فارج. ما نسبت ما نصبه ببینید زالک المضاف این زالکل المضاف رو آورد که که فاعل نصبکیه المضاف ضمیری که به مضاف برمی‌گرده ما نصب زالک المضاف این ان المضاف علی متعلق به فصله همون ان المضاف که من ذکر کردم یعنی باصله بیندازد آنچرا که نصب داده مضاف را جدا کند آنچرا که نصب داده مضاف او را جدا کند مضاف را از مضافه کنند، جدا کنند، مضافه را از مضافه ان المضافه میگه این زالکل مضاف این ما ما این فائل منظورش ماست ما نسبه این ما فاعل و فصل فائل چیه؟ کلمه فصل مستره که من ترکیب کردم مفعولا تمیزون مفعولا میگه تمیزه چرا میگه تمیزه؟ چون بعضی گفتن حاله میگه نه تمیزه او ظرفاً عجز یا ظرف اجازه بده المعنا یعنی تقدیر ایشون یه تقدیر درست کرد منم یه تقدیر حالا ببینیم کدومش بهتره عجز ان يغب سرن الذي نسبه قول علل مفعولیت اب الزرفیت درست شد او و بینن مضافلن ما تقریبا تقدیر نحوی کامل درست کرد ایشون از کلمه بین استفاده کرده گفته اجازه بده فاصله بندازه آنچرا که مضاف نسبش داده بنابر مفعولیت یا ظرفیت بین مضاف و بین مضاف الی کاربرد بزنید باشه و ناهران بیش از 7 صفحه نخوندم یعنی از نظر چیزی الان دو جلسه که